از کتاب امام ترمذی رحمه الله کتاب شمائلش پنجمین باب پنجمین باب باب و ما جاء فی رسول الله صلی الله عليه و سلام چیزی که در مورد موهای سفید رسول الله صلی الله و سلام آمد چند تا از اون تارهای های موهای رسول الله صلی الله علیه و سلام سفید شده احادیث را اینجا امام ترمذی یاد میکنه از اون تعداد موهای رسول الله صلی الله و سلام که قسمتی از زیر لباش بود و قسمتی هم کنار گوشهاش و قسمتی هم فرق سرش که کمتر از 20 عدده ذراواتی اومده سی عدد بین ده تا 20 عدد طورم. حالا هر کدوم از صحابه شاید یک برهی از زمانی اومده کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته و اون عدد را شمرده. حریص بودن برای اینکه بدونن. چند تا از اون تارهای موی رسول الله صلی الله علیه وسلم سفید شده. انس رضی الله عنه میگه لام یخطب رسول الله صلی الله علیه وسلم انما كان البياض فی عنفته و و لم رسول وسلم رسول وسلم ماش رنگ بود. بحنو با حنا وبکت وبکتم انما كان البياض فيه عن فقته عن فقه بين چونه هست و لبها از پایین اینو بهش میگن عنفقه و في صدغین صدرين بين التش و گوش پا گوشی بهش میگن بناگوش هم بهش میگن شقیقه هم بهش میگن این طرف انسان و في راس و چند تاری هم کم در سر رسول الله از جلوش فرقش این کل موهای رسول الله ص که سفید بود و نزدیک به 20 عدد یعنی هلوش 20 عدد 37مین حدیث إمام ترمزي رحمه الله وأسكنه فسيح جنات حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم إن حديث در صحیح بخاری هست در صحیح مسلم هم هست در صحیح مسلم با این زیادی اومده از سریق ابن سیرین از انس رضی الله عنه که آخرش میگه وقت خرب ابو بکر و عمر بالحناء والكتب انس رضی الله عنه میگه ولیکن ابو بکر الصدیق و عمر ابن خطاب رضی الله عنهما با حنا و کتم کتم حالت نیلی هست نیلی رنگ بنفش پر رنگ وقتی که با حنا قاطی میشه که قرمز رنگ رنگ خاکستری پر رنگ را میده میگه که این دو تا رسول الله صلی الله علیه و وسلم که از خلفای راشدین عشر و عاشر مبشر به جننه هست میگه که این دو نفر ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب رضی الله عنهما دو این دو تا چیز موهای خودشون رنگ میکردن و حنا و کتاب که همون نیلی است رنگ میکردن خب حالا برمیگردیم به خود حدیث انس بن مالک رضی الله علیه گفت آدم میگه به انس بن مالک گفتم هل خدب رسول الله صلی الله علیه و وسلم آیا رسول الله موهاش رنگ کرده بود چون ما در احادیث جایی داشت و خواهد آمد یاد شده که رسول الله صلی الله علیه و سلام موهاشو رنگ زده بود با حنا ولی خب اینجا نس رضی الله عنه نفیش میکنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلام موهاش بن عددی نرسیده بود که بخواد رنگ بکنه لم یبلغ ذلك نرسیده بود به مقداری که بخواد رنگ بکنه انما کان شیبا فی صدغی رسول الله صلی الله علیه و سلام چند تاری از موی سفید بود روی بناگوشش شقشین بغل گوشش چند تار موی در روایات دیگر اومده زیر لببا هم چند عددی و سرش هم چند عددی ولی که کسانی که رنگ می کردن که بودن او وقت شدی و در روایتی با وکر شدی قمرون خطاب را دیان هم قد خذبهبلحنی وال کتم که با حنا رنگ کرده بود خزن ال اینجا که این روایت رو داریم که ما بخاری میاره با حنا و کتم رنگ کرده بودکن کتم هم نیلی هست خب اینجا اشاره این انس که رسول الله صلی مهي سفيدش مهي الله علیه و سلم موهای سفیدش کم بوده بریم به حدیث بعدی که تعداد اون موهای سفید را انس میگه بهمون که چند عدد بوده 38مین حدیث امام ترمذی رحم الله و الله میگه حدثنا اسحاق بن منصور و یحیی بن موسی قال حدثنا عبد الرزاق المعمر عن ثابت عن انس رضی الله عنه قال ما عدت في رأس رسول الله صلی الله علیه و سلم و لحیته الا 14 شعره بیضا این حدیث در ربات دیگری از انس اومده در شهر بخاری و مسلم میگوید انس رضی الله عند توفاه الله و لی رأسي رأسی و لحیتی عشرون شعرتم بیضا رسول اللہ صلی اللہ وفات کردن و در سروریشش بیستارموی سفیدم نبود وفاتی آفتن و بیستارموی سفیدم نبود اینجا در این حدیث داریم که میگوید شمردم موهای سفید, موهای سفید در سر و رسول الله بیش نبودن سفید 14 عدد تقریبی داره میگه الله عنه. تقریبی داره میگه 14 عدد حالا تقریبی البته حدیث قبلیه حدیث 20 به 20 حالا اینجا با میگه که اون عددی که شمردم اینقده حالا تعارضی نیست این اعداد تقریبی 13 14 خصوصا در بعض از آمده تعداد کمیه یعنی از اون موهای که رسول الله صلی الله علیه و تو موهای سرش و موهای ریشش سفید شده بودن این احادیث دلالت حب صحابه رو داره بر رسول الله صلی الله و حبشون نسبت به رسول الله صلی الله و سيونهمين حديث سمامة المزيد رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤية منه ألم يدرزمنا حديث بعد رواية الدقار كتأكيد برئيقازي هذا حديث جابر بن سامرة که سوال میشه از موهای سفید رسول الله صل الله علیه کان دهن رأسه لم منه زمانی که رسول الله صل الله علیه وسلم و موهای سفید پیدا نمیشد و اگر نمی دهان من زمانی که روان نمیزد بسرشون رسول الله صل الله علیه وسلم رؤیا منه و موهای سفید دیده این حدیث در صحیح مسلمان این حدیث در صحیح مسلمان. رسول الله صل الله علیه وسلم زمانی که روغان می‌زدن اون موهای سفیدش دیده نمی‌شدن حالا میاد گفتم در احادیث بعد اون صحابی که مثلا میگه دیدم رسول الله صلی الله علیه و موهاش رنگ زده بود احتمال نبویم سوالش بر اینه که اون رنگ موهای سفیدی که عوض شدن با رنگ نبوده با حنا نبوده بلکه در اثر روغنی بوده که اینجا جوار بنصمره نقل میکنه روغان می‌زدن اون موی سفید رنگ روغان رو به خودش می‌گرفت مایل به قرمزی. داربواته تجاك الله خايم داش خادومات مي جبر مسامرة لم يكن في رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نبود في رسول الله صلى الله عليه وسلم ميسفيد إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وراه الدهن إلا كان تورم ويك بس تفرق سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بود كأجر الرغام ميزدون هذي دنم شودن فاستعداد سفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عن ذاك ودا زمان كرغان مزادان ديدا دي نميشود زمان كرغان نميزدن ديدا دي نميشود جهلوا من حديث امام ترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موافق بأن رواية كاز أنس رضي الله عنه قفتي مهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزيق بس عدد بيش سفيد نوت بس رمود نحوي بنحوي يعني بمقدار يعني باندو زي تقريبية شيلو يكون مين حديث أمامة المذير رحمه الله ميقويات حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا معاوي بن هشام عن شيبان عن أبي اسحاق عن يكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبته قال شيبت نهود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كويرات كله دو حديث رحم الله ميات حدثنا سفيان بن وكي قال حدثنا محمد بن بشير عن علي بن صالح عن ابي اسحق عن ابي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شفته قال قد شيبت نهود وأخواتها كل لكمين ما كل دو حديث توهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذو تو خطاب الصحابه حس الله صلى الله عليه وسلم ابليش هو بكر الصديق رضي الله عنه رسول رسولا بير شدي اصبوا شو هي بير شدي مو اصفيشدي خو ده موهاش سفید کله رنگ زده چند تار توی ریشه راست ساسه نبی سفید شده میگه پیر شده سه سال کوچکتر از رسول الله صلی سه سال کوچکتر از رسول الله صلی اللہ رسول الله سفید شده و رنگ زده و رسول صلی میگه سفید شده بعد در رسول الله سوره واقعه سوره مرسلات و سوره عمه یه تسالون و سوره ایده شمس و و در وقت بعدی داریم ابو جحیفه میگوید که گفتیم یا رسول الله پیر شدی ها قلشه ایبتی هودون و اخواتا هود و خواهر از سوره های دیگه مرا رو پیر کرده خب چرا این سوره ها چرا این سوره ها را رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاد میکنه که پیرش کرده بعضی‌ها گفتن به خاطر سختی‌های روز آخرت که توش هست، سختی‌های روز قیامت. خصوصاً سوره والشمس که خود رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمایند من سر له وانظرا الى يوم القيامه کانه راى عين. یعنی خایتش قیامت رو واقعاً ببینه جلو جشات. بخونید فارس ولی اقرا اذا الشمس کورت. فهمشینن اذا السماء انفطرت. فهمشینن اذا السماء انشقت. یزره را بخونید. گرگونی کوها، گهگشانها بعد از اینکه در سُرده میده میشه چی میشه؟ و بعد بار دیگر در سور دمیدی میشه به وقتی برای بار اول کهکشان ها در هم کوبیده میشن نابود میشن برای بار دوم که در سور دمیدی میشه همه حش میشن در روز محشر در صحنه محشر روز رستاخیز هولناک اون روز اون روزی که انسان لخت و آریان میاد اون روزی که مجرمین و طبع کاران زنجیر بگردنشونه اولیل اقلال و خیعناقیم و سلاسل و اون روز سخت که زنجیر به گردن مجرم و توحکاره، گناهکاره، بر سر و صورت به زمین محشر کشنده میشه، پنجه هزار سال عذاب میبینه. اینها تصویری از صحنه محشر، تصویری از تصاویر اون روز، هولناک اون روز. بخاطر همین رسول الله صلی اللہ علیه میفرمایند، میخوای قیامت رو ببینید، این سوره ها رو بخونید. آنها در بعض از روایته اومده از ابن عباس که ثابت نیست، ولی خب مفصل یادش میکنن. سنادی برابر شی یاد نگارده که ابن عباس رضی الله میگوید ما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد من هذه الايه ولا اشق آیه سختر و سنگینتر از این بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل نشد از سوره هود یاد میکنه فرمودی الله جل و علا فاستقم کما امرت فاستقم هیچ آیه سنگینتر و سختتر از این بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. حالا البته در صحیح مسلم داریم از سفیان بن عبد میگوید قلت يا رسول الله سفيان بقى برسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لأ, لا أسأل عنه أحدا بعدك بمان بقو يجيزي بحث إسلاما بإسلاما بار بجارده ديك كاسي بعد السنة بورسا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مين قول آمنت بالله ثم استقم بقو إيمان ووردا بأ بالله سبس استقاماتك الله إن جاء رابتش بأي سوريهود فاستقم كما أمرت که اینجا الا گفتم در روایت از ابن عباس اومده و مفسرین یاد می کنن که سنگین ترین آیه از سوره یود خصوصا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. این بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی سنگین بود استقامت انچناچه الله خواسته استقامت چه الله خواسته خب این آیه رو خودمون معکوسش بکنیم روی نمازمون که خوندیم نماز که خوندیم نماز, نماز عشا چند از اون نمازت به خودت می از ده نمره چند به خودت میدی نمرت قابل قبوله یا مردوده شانز خشوع داشی اون زمانی که گفتی الحمدلله رب العالمین سوره فاتحه از اول تا آخر چه مقدارش در اون رکوع و الله أكبر عظمت الله بیادت اومد و در اون سبحان ربی العلی و سبحان العظيم العظیم بين السجدتين اون بین سجده تین اون ذکری گفتی رب اغفرلی و رحمنی چه رققات اینها دل گفتی چقدر اون افتقارت بندگی در سجده داشت حقیقی بود. بابا اونطوری که امرو شدی فاستقم که عمرت نمره چن خود میدی؟ صحابه بودن رسول الله صلی الله علیه و آله کنارش بکر و عمره میگه یکی از شما نماز میخونه از ده یک میگیره کیه جلو بشو ابوبکر صدیق هم یا از ده یک میگیره یا از ده دو میگیره از ده سه میگیره یا 4 یا پنج دیگه خیلی حالا ما چی باور کن اگر نه که بگیم از 100 یکو از هزار اگر یک بگیریم شاهکار کردیم اگر منفی نگیریم سخت فاستقم كما امر دستور الله جل و استقامت کن چنانچه چه الله هست خواسته نگاه کن سوره هود umatایی که پاشون لغزید الله چی کرد باشون شیبتنی هود شما چه برداشت میکنید از این سخنان رسول الله علیه الصلاه و السلام شیبتنی هود بعد اونجا گفتیم در حدیث استاد سلام میفرماید اگر میخوید قیامت جلو روتون ببینید سوره کوثر رو بخونید قیامت رو بخونید همه آخرت امواج سفید کرده من که موهامو سفید هم دنیا است یا هم آخرت؟ همه چیه که موها سفید شده؟ مردم برای چی موهاشون سفید شده؟ تفاوت ما با رسول الله علیه السلام موها ما سفید شده ولی که مخاطر دنیا میدونیم مخاطر دنیا است؟ ترس دنیا، تمع دنیا، غصه دنیا، غم دنیا، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلام میگه مهم چیز سفید شده به خاطر هولناک روز آخرت اونم کی اشرف خلقت. اونم کی الله بنان ما قبل ما بعدش بخشیده. اونم کی سید البلد آدامه، سربر فرزندان آدامه. هولناک روز قیامت. ترسش از الله میرسونه، ترسش از روز قیامت میرسونه. تدبرش نسبت به قرآنی که تلاوت میکنه میرسونه، خونده قرآن درش تاثیر گذاشته. میدونه سخن الله جل وعلا چیه و چی میگه و حرف الله جل و چه چه فه همین دوره اس که اجرت نشودم سفید شده به خاطر اون غم اندوهی که نسبت به آخرت داره نسبت به روز قیامت داره چی شد در سوره هود بر سر اونهایی که حرف الله رو قبول نکرده چی شد بر سر قوم هود قوم سمود قوم نوح نام صلا هست رسول الله صلی الله علیه و سلم میترسه بر خودش و بر امتش از عقوبت الله جل در دنیا و در و اینجا هست که این حدیث از درس هایی که به ما میده یک موه هستا صحابیه نگاه رسول الله صلی میکنه میگه پیر شدی یا بیستا هم نشده بیست عدد نیست و رسول الله صلی اللہ در پاسخش میگه اینا به خاطر دنیا هم نیست فکر نکنی یا به خاطر آخرت یعنی چی من تو چه درسی میگیریم از این موها؟ بنت غم الدنيا را هم همه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ميكاد اللهم لا تجل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا هممون من دنيا قرار نده دل دنيا مون نكو اين دو باز دل بخاهمة الله عليه وعلا و ديوت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يك موحة ولي درس زندگية درس آخرته درس ايمانه درس اعتماده والله جل وعلا درس حق دون السنة سخنانه الله جل وعلا الدرس نبرد اسکنارش گذرا رد بشه اینها به انسان آمادگی میده برای روز آخرت تقوا ترجعون فیه لله الله تقوا یوم ترجعون فیه ال آخرین آیاتی که مفسرین یاد میکنند که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده تقوا ترجعون فیه لله الله ثم توفى كل نفس ما کسبت و لا يظلمون رو همین بازگشتی نیست و تقوا یوم ترجعون فیه لله الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون واتقوا تقوی داشته باشی، تقوی الله جل و علا ترجعو نفیه الله. اون روزی، یعنی به از اون روزی که به طرف الله جل و علا بر میگردید بازگشتون به طرف الله جل و به اون روز بازگشت، روز قیامت، روز محشر به اون روز خودتون آماده بکنید این چیز شما را درمان میده مرهم دردتونه پانسمان زخمتونه این سبب میشه که دلت دنیا بکنید حب مال از دلتون کنده بشه. حب مال، حب دنیا، زلته کنده بشه. از نفاق نجات بیابید. و نفاقی که درباره منافقین، الله جل و علاه میگه فی و الله ملادم. و نحب دنیا، از زلته کنده بشه. عزیز که برده و بنده پول بشید چنانچه رسول الله صلی الله عليه وسلم میفرماید تعیسه، هب تدر همی دینا خاره. بنده پول، برده پول. بردگی ها مردم برده پولن، بنده پولن. زکات نمیده، مال ربا میخوره، صدایت نمیده، خود خواه. قولو نگه داشته برای خودش میترسه از اینکه مالی بده در راه الله جل و علا مریزه هم جسمی هم روحی هم افسرده است خودخوری کرده معدش کلیش کبدش همه اون اعضای بدنش درگیر شدن به خاطر اون افسردگی خودخوریش به خاطر اون خودخواهیش اون مریضی روحی مریضی که در اثر عدم ایمانشه به الله جل و علا و سخنان الله و وعدهای الله اون مریضی سرایت کرده از روح و روانش به به بدنش و تنش في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض اصل قلب شروع میشه از اون ایمان و اعتقاد شروع میشه وقتی که ایمان و وقتی که اون اعتقاد تصحیح نمیشه اونجا هست که چی اونجا هست که قلب اصلاح نشده فاسد شده اون قلب فاسد تن فاسد میکنه تک تک اعضاء درگیر میشن سردرده عصبیه نمیتونه بخوابه مشکل گوارشی میاد هست مشكله شونها هست شنوها و بس معده زده به شونه ها شونه ها به سر از کجا آمده از اون قلب مریض فی قلوبهم مرضت رحم الله جل فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض قلب که مریض شد دیگه میزنه همه جا همه جاش مریض میشه روح و روانش جسم و تنش همه جاش الله مریضشو بیشتر میکنه خیلی بندگی دنیا درد بدیه الله جل وعلا از صفات منافقین یاد میکنه میگه که الله جل وعلا در مقابل حسین در سوره توبه در مقابل نفقات و صدقات و زکات و اینا و غنایم من اگر بهشون بدی رازیه نزد خوشنودن نیچی نمیگن پر از خوشحالی ولی که زمانی که دست نگاه میداری اده هم میست خب نخوشنود میشن خشگی میشن اگر از صدقات گیرشون نیمد اگر از خیرات گیرشون نیمد دیگه داد و بیدادشون در میاد پس این حدیث همیشه مد نظرتون باشه خار باشه تعیشه اون کی عبده درهم و دینا خار باشه زلیل باشه اون کسی که بنده پوله برده پوله این دعای رسول الله صلی الله وسلم در حق کی؟ در حق اون دلبستی دنیاوی دلبسته دنیا اون کسی که دلش به ماله چشمش به مال مردمه چشمش به پول خیرات و صدقات و زکات هات به مال مردم داره به مال زکات داره مال خیر داره اگر این حس تو کسی را دور بزنی بخاطر که اون پولو به چاپلونی بکشی از طرف زمانی که تمعکار شدی تو این مال مردم اونجا هست که باید بترسی بر دین و ایمانت و این دعای رسول الله صلی الله علیه و خار ذلیله اون شخصی که برده دنیاس برده پول و ماله درمان این قضیه گفتم خیلی سخته یعنی یکی از چیزایی هست که حسین ابن قییم بهش می‌پردازه تو کتاب طب قلوبش که توصیه می‌کنم حتماً بخونید کتاب داوود دوا حتماً بخونید چون همونطور که سوره بقره گفتم در موردش صحبت کردم که الله جل و علا در من منافقی منافقین میگه فی قلوبهم مرض وقال مقدار دی حب دنیا حب دنیا هست که تو رو در نفاق میندازه و این نفاقت از عملی تبدیل میشه به اعتقادی بد دردیه نفاق بد دردیه نفاق و بعد عاقبتی هم دارن منافقی و بعد لغزشیه بد دردیه جاشون کجاست به درک اسفلی من النار بوکی و هامان و فرع بد ده خیلی سخته و سنگینه رسول الله صلی الله علیه و آله بر خوردش برای درمان این قضیه هم سنگینه قصه سهی بخوری که کبن مالک نخل میکنه یاتو هست که امرار ابن ربیع و هلال من عیسی نفر از که آیاتی از سوره توبه در شأنشون نازل میشه و عل اثرت اللذین خلفو تنبیهشون میکنه 50 روز باهاشون حرف نمیزنه میگه نخلا صبر کرده بودن صبر داده بودن دل دلمون نمیواد یعنی حالا حمام گرمه تعداد صحابهام زیاد بودن امرای رسول الله صلی الله علیه و آله دنیا هست فریشون داده سبب شده که چی؟ پا عقب بکشن، پس بکشن از جا. رسول الله صلی الله علیه و آله اینجوری تنبیه سختشون میکنه. پنج روز باهاشون حرف نمیزنه. در دین ریمون خودشون شک میکنن که الله توبهشون قبول میکنه یا در مقابل این گناه معصیتی که انجام دادن. صرف از دستور الله جلاله و علاه اونها رو فرا خوندن به جا اینو پا پس کشیدن. نفاقه یک جو پا لغزیه. نمیدونن الله میبخشه دهشون یا نه. توبهشون قبول میشه یا نه. خیلی سنگینه سخته. بد دردیه، بد دردیه. نفاق. بد دردیه حب دنیا. مریضیه که سبب میشه انسان از آخرتش غافل بشه برایش مهم نباشه که این عقوق والدینه او را به جهنم میبره این سلح رحمه قطعش او را به جهنم میبره این مال حرامه تابانش با در جهنم پس بده از اون رباش از اون مال حرام مال مردمش مال دوزدیه و الى آخر شاله سبومين حديث أمام الثالث رحمه الله يقول حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شعيب بن سفغان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجري عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه احمر أبو رمسه تيمي ابو رمثة رضي الله عنه بيقيتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي ومدا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم امره فرزنده هيكس بچا قال فوریت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم نشن من دادن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشن من دادن خلاص شاید براي اولين بار براي بشناسه الرسول الله صلی الله و سلم الله الله علیه بعد میگه گفتم هذا نبی الله از باب تحقیق یعنی بعد میگه دیدم و علیه دیدم رسول الله دو تا پوشیده اون که اون که كا دور کمرش بود و از لونگ و از اون که بر بود بر دوشش بود سبز هر دو تا سبز بودن نه که سبز خالص حالا میاد در زمین رنگ لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم که می چه از اون قرمزش چه از اون سبزش خالص نبود ما بودن سبز با سیاه یا با سفید قاطی بود و همچنین قرمز با سفید یا سیاه قاطی بود خصوصا وقتی گفته میشه مثلا حالا در بعضی از روایات هم اومده به جای ثوب مثلا اومده بردان اخضران برد برد یک پارچه یمنی که می بافن از پشم بره معقولا خب این برد در نوع بافتنش راه راهی خط خطیه معمولا اون برده که یمنی ها درست میکردن و میکنن همه من چنان رنگش یک نباخ نیست بلکه راه راه پارچه ها را نساجی میکنن و میبافن خب الان این قسمت بحث لباسه که میاد باب لباس مستقل داریم اون چیزی که الان میخونیم در مورد چیه؟ موهای رسول الله علیه و اللہ علیه وسلم موهای سفیدش و له شعب غیر از اون لباس جامعه سبز قد موها موهاش سفید شده بود حالا اینجا موهاش سفید شده بود زیاد سفید شده بود یا اینکه سفیدی بود تو موهاش اگر بخوام جنب بندی با اون حدیثی که قبلا داشتیم از حدیث انس و حدیث عبدالله بن عمر چیه اینکه موهاش سفید شده بود نه اینکه همش نه اینکه سفیدی غالب شده بود نه تعدادی از موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم سفید شده بود یعنی این سفیدی باعث شده بود یعنی اومده بود سفیدی توی ریشا و موی سر رسول الله علیه سات و سلم قبلا خب این یه قسمته حالا میاد بعداًم اینکه آیا رنگم کرده بودن یا نه یعنی حناامزده بودن چون اینجا داره میگه با شیبو احمر و اون های سفید رسول الله علیه الصلاه و السلام سرخ شده قرمز حالا این قرمزی در اثر روغنه همون روغنی که داشتیم در روایت قبلی ما قبلش یا اینکه نه زده بود رسول الله صلی الله علیه و آله موهاشو زده بود یا نه حالا اینا همه جزء ما با که تو اینجا خواهیم داشت تو این پخشمون. صحیحی که رسول الله صلی الله علیه و هاشو روغم میزد. و زمانی که روغم میزد، اون سفیدی دیگه مشخص نمیشه. تنها که در اون حدیث داشتیم. حالا اگر بخوام این حدیث رو جنب بندیم با حادیث ما قبل. البته این حدیث که الان خوندیم از علماء تازه کردن کرده، به خاطر شعب نصفوان که در اسناده، ولی خب آلبانی تحسینش میکنه. آلبانی تحسینش میکنه. حدیث. دارج زعف هسه ولی زعفش یسیره هم متابع داره و هم شاهد داره قالبانی براش یاد میکنه در تخریجش در حدیث همین شمایل ترمذی و همچنین در سنن ترمذی البانی تحسینش میکنه 44مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمره رضي الله عنه اکان في رأس رسول الله صلی الله و سلم قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا الدهن وراهن الدهن يؤتون هسكين قفتين يبور شاركة من جواب هم حديث وراء تكرار شد ولخواب بعد سحابي دي جار. حديث جابر بن سامره رضي الله عنك ميقياك سؤال شد سمق ميقيا جابر بن سامره رضي الله عنك سؤال شد آياد ميسفيد هم تويه مهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بود قفك ميسفيد توی موهای رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود مگر تعداد موهای کمی در فرق سرش وسط سرش که اگر روغن میزد، پنهان می شد اون موهای سفید دیگه دیده نمیشد، رنگش با اون روغن عوض می شد دهنا و راهن الدهن اون روغنه کوشش میداد اون موی سفید و موی سفیدی که دیده نمی‌شد. پس اینجا سه مالک حرب سوال می‌کُرسه از جابر بن سمره در مورد موهای سفید رسول الله صلی الله علیه و سلم بحث ریش رو نمی کنه بحث فقط فرق سر رسول الله علیه و آله می کنه یک مسئله هست که اینجا اشاره بهش میشه. با اونم این که از لاز لغوی بخاطر خاطر اینکه بحث لغت این یاد بگیریم. گفته میشه مثلا اینجا صحابی سوال میشه: "اکن فی راس رسول الله" آیا در سر رسول الله صلی اللہ علیه و موی سفیدی بود گفت در سر نگفت در موهای سر نگفت موهای سر گفت در سر یا مثلا در قرآن داریم همین قضیه هارون به موسی میگه لا تاخذ بلحیتی ولا براسی موهاشو گرفته بود سرش که نگرفته بود موهاش گرفته موهای هارون موسی علیه سلام گرفته بود, گرفته بود. ست و تاخذ بلحیتی اصل لحیه دو تو سخونه ولی بلی خب خد اون موی که روی اون فک هست به اون مو میگن ریش به اعتبار جاش موی که روی سر هم بهش گفتیم میشه سر نهی که سرش رو گرفته نه موی سرش رو گرفته اینجا هم سماک سوال میکنه یا میگه سوال میشه جابران سماره از سر رفت صدای سلام چی سرش؟ خود سرش؟ نه موهای سرش و این زیاده در لغت عرب مثلا گفته میشه العانه، الابط حالا بغل ها میاد نسبت به اون موی بغل گفته میشه بغل یا مثلا گفتم مویی سر گفته میشه سر. موی روی اون فک و فگ گفته میشه موی ریش گفته میشه به نسبت اون لحاء اون سخونه فک و این گفتم زیاده فقط از باب فایده لغوی گفتم که که بدونیم این نسبت ها و این مسائلی که میاد خب پس موهای سفید رسول الله صلی الله علیه و روی سرش یعنی روی موهای سرش کجا بود اینجا در این حدیث فرق سرش وسط سرش یک کم چند تاری از مو و در احادیس ما قبل داشتیم چند تاری هم بغل گوشش و چندتاری هم زیر لبا این سجایی جای قسمتی که موی سفید اینجا جبران سبوره اثر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم یاد میکنه خب این حدیث از جمله احادیث هست که دلات بر این میده که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم گاهی نه میشه گاهی حمام را سر برمی داشتند و صحابه میدیدن اون موهایی که سفید بود بر سر رسول الله علیه و آله و این بود که موهاشو بپوشونه رسول الله علیه با یا با و خمار يا دسمالي که روی سر منداخت سبحانك الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى محمد